حکایت عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاقده لعنهه الله علاقده و به حجت با او بس نیامد سپرویان داخت و برگشت کسی گفتش تو را با چندین فضل ادب که داری با بی دینی حجت نماند گفت علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او به دینها معتقد نیست و نمیشنود مرا شنیدن کفر او به چه کار می‌آید؟ آنکس که به قرآن و خبر زون نرهی آن است جوابش که جوابش ندهی.